حرکت فرای باورها و منطق این درسی است که امروز در کلاس هیپنوتیسم یاد خواهید گرفت یکی از چیزهایی که تو هیپنوتیسم خیلی مهمه و خیلی اثرگذاره خیلی بنیادیه اینه که شما به عنوان از که می‌خواید خودتون رو هیپنوتیزم کنید زندگیتون رو با هیپنوتیسم تغییر بدید یا کسی رو هیپنوتیزم کنید که تغییر خاصی ایجاد کنید حالا ممکنه بخواید و بسپشید که ترس خاصی رو یه فردی یا خودتون از دست بدید یعنی اون ترس دیگه از شما دور بشه فوبیای خاصی رخ نده براتون ممکنه بخواید لاغر بشید ممکنه بخواید کسی رو قانع کنید که کار خاصی بکنه ممکنه بخواید خودتون رو هیپنوتیزم کنید که مثلا وقت‌گوشی نکنید خیلی موثرتر زندگی کنید فرقی نمیکنه. یکی از مهارت‌های بنیادی اینه که شما از سطح دائما باور کردن چیزهای مختلف جدا شید و فراتر از باورهاتون باشید. به عبارتی میشه گفت هیپنوتیزم هنر ایجاد کردن باورهاست. وقتی یه سری باور برای شما شکل میگیره مثلا ممکنه شما باور کنید که خب من نمیتونم موفق شم من نمیتونم ثروتمند شم. خب وقتی این باورها شکل میگیره و شرایط زندگیتون هم تایید میکنه اون رو دائما شما دیگه خیلی میرید توی این باور که خب آره دیگه واقعا این اینطوریه من نمیتونم موفقشم شم و وقتی این باوره دیگه قوی میشه و اینها واقعیت شما شکل میگیره و شما هیپنوتیزم میشیدم علن و به همین علت که خدمتون گفته میشه به عنوان هیپنوتیزور به عنوان کسی که کس داره هیپنوتیزم رو یاد میگیره من میخواد توی اون خیلی موفق بشه برای خودشه برای دیگران خیلی مهم هست که باورهاتون رو زیادی باور نکنید. خیلی مهم است که خیلی به باورهاتون توجه نکنید. خیلی به هیچ چیز توجه نکنید. ببینید من منظورم خیلی حتی اقراغامیز میتونه باشه. اگر الان دارید دست میزن به چیزی و حس میکنید که سرده یا گرمه خیلی باور نکنید که اون چیز واقعا سرده یا گرمه. اگه با یک دارید حرف میزنید و این نظر خاصی رو خیلی با پافشاری داره میگه در روی موضوعی نمیخواد با شما مثلا توافق کن در روی چیزی خیلی باور نکنید که واقعا این دیگه حقیقت مطلقه و نگرش ها و زابیدیت های مختلفی هست که شما می‌تونه میتونه به این قدرت برسونه یعنی اگه شما در حال حاضر دیدتون به جهان اینه که خب من این بدن هستم و تو این جهان فیزیکی مثلا با قوانین فیزیک دارم عمل می‌کنین قوانین خیلی خشک و غیر قابل تغییرن و باعث میشه که واقعا هم نتونین تغییری ایجاد کنین توی جهان، توی رفتار دیگران، توی رفتار خودتون. و خیلیا میان میگن که مثلا به فرض چه میدونم من وقسم این حرفا تو جامعه هستم سن که از 10 سالگی میگذره دیگه اصلا از هفت سالگی میگذره دیگه اصلا نمیشه کسیو تغییر داد. آدم عادت‌هاش غیر تغییره. از اینجور باورهای سفت و سخت زیاده و اگه به اینها باور کنید واقعا همینطور هم میشه اینه ازیاد از نبرید زندگی و جهان دقیقا همون چیزی رو به نمایش میذاری که شما خودتون دارید بهش باور میکنید و بنابراین من از شما دعوت میکنم هر گونه باوری که دارید که باعث میشه همه چیز رو سفت و غیر قابل تغییر و خشک و نمیتونم نظر این آدم عوض نمیشه و خدا هم نمیتونه حرف اونو عوض کنه و اصلا نمیشه روش اثر گذاشت و من از اول اینطوری بودم عوض نمیشم و همه اینها رو بریزید سطل زباله و به هیچ چیز باور نکنید مدیتشن تو این راسته خیلی میتونه کمک کنه به هیچ چیز سفت و سخت باور نکنید نگید الان حتی حقایق و بدیهیات رو هم من منظور همین مثلا شما ممکنه بگید که خب الان روزه حتی به اینکه الان روزه باور نکنید و الان میبینید علومی مثل علوم فیزیک کوانتوم مثل علم فیزیک کوانتوم داره کاملا حقیقت رو به صورت خیلی فلوید و روان و قابل تغییر تفسیر و بیان کنه میگه کلی واقعیت معاذی هست که همه اینها در این نصف وجود دارن و همه هم همزمان درستن. و بنابراین الان هم روز هم شب همه این حالاتا وجود دارن. هم واقعیت موازی که به فرض الان شما توش قرار دارید، بله ممکن الان روز باشه به فرض. و بنابراین صحبت من اینه. باورهایی که دارید رو خوب بهش نگاه کنید. تو زندگیتون چه باورهایی دارید؟ های باور دارید شما نمیتونید یه ماشین مدل بالا بگیرید، اگه باور دارید شما نمیتونید یه راتش خیالی داشته باشید. به این چیزهایی که باور دارید خیلی باور ن... نداشته باشید. باورشون نکنید. و اون موقع هست که شما میتونید چیزی رو تغییر بدید تا زمانی که توی سطح باور کردن و باور داشتن گیر کردید شما میتونید چیزی رو عوض کنید چون باور اصلا اجازه نمیده چیزی عوض بشه بنابراین به باورهاتون آگاه شید و بعد به چیزهایی که باور دارید خیلی باور نکنید چون ها فقط یه فکرن که زیاد تکرارش کردید و ذهن شما رو هیپنوتیزم شد و زیادی فکر کردید که واقعه در حالی که اینطور نیست